حکایت در را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس. اگر بر حاجت تو واقف گردد، همانا که در قضایان توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم، گفت منت رهبری کنم، دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فرو هشته و توند نشسته، برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لغای او بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش فرسوده گردی، اگر گوگی غم دل با کسی گوی، که از رویش به نقد سوده گردی